بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوند بی اندازه نهایت باره حامیم فرو رستاده شدن این کتاب از جانب خداوند صاحب قدرت مونی و با حکمت است بیگمان در آسمان ها و زمین نشانه است برای مؤمنان و در آفرینش شما و آنچه از جانوران در زمین فراگنده می شود برای باورمندان نشانه است. و نیز در تناوب شب و روز و آنچه خدا از آسمان روزی فرستاده است و با آن زمین را بعد از مردن آن زنده دانیده و همچنین در حرکت بادها و تحولات آن برای آنانی که صاحب عقل و برداشت صحیح می باشند است. اینها آیات خداست که آنها را ما بر تو به حق می خانی. پس آیا بعد از تکذیب خدا و آیات او به کدام سخن ایمان می آورد افسوس به حال هر دروگوی گنهکار آنکه آنکه آیات خدا را که برایش خوانده می شود می شنود سپس باز به با همان کفر خیش با تکبر اصرار می گویی که اصلا آن را نشیده است پس او را به عذاب درناکی مجده بده. و چون از آیات ما چیزی را بداند آن را به تمسخر خور چنین این مردمی برایشان عذابی است و از پی ایشان دوزه است. ایشان را نه اعمالی که متکب شده اند بینیاز می سازد و نه هم دوستانی که جز خدا برای خود گرفتند و برای ایشان عذابی بزرگیست این رحمه است و آنانی که از آیات پروردگار خود انکار کار ورزیدند به ایشان عذابی از جنس عذابی دردناک است این خداوند است که به شما بهر را فرمان بردار گردانید تا کشتی در آن به حکم او حرکت کنند تا از فضل او بیجوید و تا باشد که شما شکر گذار شدید و آنچه را در آسمان ها و در زمین است؟ همگی را از نزد خود برای شما فرمان بردار گردانی یقینا در این برای آنانی که تفکر میوردن نشانه است. برای مسلمانان بگو از آنانی که چه داشت داشته از روزهای خدا ندارند در گذارند تا مردمی را به اساس کرداری که داشتند مجازات کند کسی که کاری نیکند برای خود اوست و کسی که بدی کند پس به زیان اوست و به فروردگار خود بازگردانده می شد بگمان با اسرائیل کتاب فرمان و پیامبری دادیم و ایشان از چیزهای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را به جیهانیان برتری دادیم. و به ایشان نشانه های روشنی از این امر ارزانی کردیم و با هم اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه به ایشان علم ارزانی شد آن هم از روی حساسیت میانی خودشان بود بیگمان پروردگار تو در روز قیامت در میانی ایشان در مورد چیزهایی که در آن اختلاف می‌ورزند فیصله می کنند سپس تو را به راه راست از امر یعنی دین قرار دادید آن را پیروی کن از هوای نفسی کسانی که نمی دانند پیروی من رو هرگز از تو در برابر خدا دفاع کردن نمی توانند و بگمان این ستمگاران بعضیشان مددگار بعضی دیگرند و خداوند مددگار پرهیزگاران است این از دلائل روشن و رهنمای و مرحمت برای مردم باورمند آیا کسانی که مرتکب کارهای ناشایسته شدند، این که ایشان را با کسانی که ایمان آوردند و کارهایی که انجام دادن مصابی قرار می دهد به که هم زندگیشان و هم مرگشان مصابی باشد بد از چیزی که قضاوت می کند. خداوند آسمانها و زمین را به حق آفرید تا به هر کس مطابق و عملش جزا داده شود و ایشان هرگز مورد ظلم قرار نمیگیرد آیا دیبی کسی را که هوای نفس خیش را خدای خیش گرفته و خداوند با آگاهی از روش بد او او را گمراه ساخت و بر گوش او و دل او مهر زد و بر چشم او پرده افگن پس بعد از این که خدا کسی را گمراه گرداند کیست که او را, را یاب سازد؟ آیا پند نمی و گفتند جز زندگانی این دنیا ما چیزی دیگری نیست می میریم و زنده می و جز زمانه ما را حلاک نمی کند ایشان در این باره هیچ معلوماتی ندارند نیستند ایشان مگر اینکه چیزی را به گمان می گویند. چون به ایشان آیه های روشن ما خوانده شود دلیلشان جز این نیست که بگویند اگر راست میگوید پس پدران ما را بیاورید بگو خداوند شما را زنده می کند سپس شما را می میراند. سپس شما را به روز قیامت که در مورد آن شک نیست گرد می آورد مگر بیشتر مردم نمی داند پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست و روزی که قیامت برپا می شود در این روز است که راهیان راه باطل زیانمند می شوند. هر گروه را به زانو در آمده می بینی هر گروه به سوی نامه اعمال خود فرا خوانده می شود و در آن روز است که طبق کردار خود مجازات می شود این نامه اعمال کتاب ماست که بر شما به حق گواهی می دهد. به اگمان همه چیزهایی را که شما انجام می دادید می نوشید به این ترتیب کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند پروردیگار به مرحمت خیش داخل می و این از تومان پیروزی آشکار ولی برای کافران گفته می شود آیا چنین نبود که های من به شما خوانده می شد و تکبر می نمودید و مردم گنهکاری بودید و چون گفته می شد که واقعا وعدۀ خداوند حق است و در قیامت شکی نیست می نمیدانیم نمی دانیم قیامت چیست ما در زمینه گمان میکنیم کنیم و یقین نداریم در آن روز است که بدی اعمالشان برایشان روشن شود و جزای ناخوشایند چیزی که به آن تمسخر می کردند آنها را فرا می گیرد و به ایشان گفتم می شود امروز شما را به فراموشی می سپارید همچنان که شما روبرو شدن با این روز را فراموش داشتید جای شما آتش است و هیچ مددگاری ندارید این از سببی است که نشانه های خداوند را به تمسخور گرفتید و زندگانی دنیا شما را فریب داد از این رو امروز از دوزخ بیرون کردن نمی شوند و نه هیچ گناه از ایشان حضی رفتن پس ستایش تنها از آن خداست پر وردگار آسمانه ها پر زمین و پروردگار همه جهانیان بزرگی و جلال در آسمان ها و زنین از آن اوست و هم اوست صاحب قدرت منی و با حکمت.